داستان کفش های بلقاسم روز روزگاری بازرگانی بود در بقداد به نام عبو که ثروتش حد و اندازه نداشت و تمام فکر و ذهنش جمعوری مال بود با این همه ثروت و مال برای خرج کردن یک دینار چنان دست و دلش می لرزید که مردم می گفتن از بلقاسم جان بخواهید اما یک دینار نه و داستان خصاصت این مرد چنان نقل هر مجلس شده بود که هر فردی داخل هر محفلی که داشت از اون یاد می کرد اما کفش های اون حتی از خودش مشهورتر بود بلقاسم ده بیس سال بود که این کفش های پاره پاره رو می‌پوشید، که از بس وصله روی وصله خورده بود و زشت و زمخ و سنگین شده بود حتی راه رفتن با اونها کار همه کس نبود و فقط بلقاسم بلد بود که پا توی اون کفش کنه و طوری راه بره که زمین نخوره پین بغداد این کفش ها رو خوب میشناختن و هر کدوم وصله ای روی وصله ها زده بودن اما یکی دو سال بود که این کفش ها به روز و حالی افتاده بودند که دیگه هیچ پینه دوزی حاضر نبود به درخواست های مکرر بلقاسم گوش بگن و وصله تازهی روی وصله های قبلی بزنن میان مردم شهر بقداد داستان کفش های بلقاسم به صورت زربلمسل در آمده بود و هر وقت کسی میخواست چیز زمخت و پاره پاره‌ای رو مثال بزنه میگفت که به کفش های بلقاسم شباهت داره و اما روزی از روزها بلقاسم کفش های مشهورش رو بپا کرد و از خونه بیرون اومد تا به بازار بره در هر قدمی که برمیداشت کفش هاش چنان تلق تلق میکرد که دا دور شنیده میشد و دکاندارها که با سر و صدای کفشهای بلقاسم آشنا بودن از دکانهای خودشون بیرون می و با خنده و مسقرگری بلقاسم رو به همدیگه نشون میدادند. اما بلقاسم به اونها اعتناعی نمیکرد و در فکر این بود که اون روز چه حقی بریزه که پول بیشتری به جیب بزنه و بخت باهاش همراه بود و به بازار شیشگران که رسید سمساری سر و صدای رو که شنید بیرون اومد و گفت بول قاسم خبر خوبی برات دارم تاجری از حلب به اینجا اومده و یه عالمی ظرفای شیشهای با خودش آورده و میخواد همه رو یه جا و پول نقد بگیره پولش کشیده و به تنگ دستی افتاده و کسی حاضر نیست کالاش رو به نقد بخره من رو اون رو آماده کردم که ظروف شیشهای رو به نصف قیمت بفروشه قول میدم همه رو در ظرف دو سه هفته به سه برابر قیمت بفروشم بلقاسم با اون سمسار که واسطه معامله بود مدتی رو چونه زد و باهاش قرار گذاشت که بره و ظروف شیشه تاجر حلبی رو به یک سوم قیمت بخره ساعتی بعد معامل سر گرفت و همه چیز به نفع بلقاسم تموم شد و اون از اونجا به بازار عدفروشان رفت و در اونجا دلاری رو دید که سرب در گوشش گذاشت و گفت بلقاسم؟ معامله خوبی برات سراخ دارم از دمشق مقدار زیادی عطر و گلاب برای حاجی کازن فرستادن که رو دستش مونده و کفگیرش دیک خورده که اگه پول نقد بدی همه اون عطر و گلاب ها رو به یک چهارم قیمت برات میخرم قول میدم اگه سه چهار هفته اونها رو در گوشه خونت نگهداری کنی همه رو به چندین برابر قیمت برات میفروشم بلقاسم زیر و بالای این معامله رو درست سنجید و با شامه تیزی که داشت متوجه شد که این کار صد درصد بنفشه به دلال اشاره کرد که دست روی دست نظر و بر معامله رو تموم کنه و یک ساعت بعد پرتیبی داد که ظروف شیشهی و عطر و گلاب رو به خونه اون ببرن و در گوشه جا بدن تا موقع فروش اونها برسه و با خیال راحت شنگول و سرمست به راه خودش ادامه داد که در یک روز دو معامله پرمنفعت داشت و بازرگانان بازار بقداد رسمشون این بود که هر وقت معامله پرمنفعت و پرسودی داشته باشن یه عده از دوستان و آشنایان خودشون رو ولیمه بدن اما بلقاسم احل اینجور کارا نبود و از ترس اینکه آشنایان بازار رو ببینه و بخواد ولیمه بده از بازار بیرون رفت و به فکر افتاد که به هموم بره و چند پول سیاه خرج نظافت و شستشوی سر و تنش کنه که در حدود دو ماه بود که به هموم نرفته بود و سر و پاش در کثافت و نکبت اوتور شده بود از غذا وقتی پاش به رختکن هموم رسید یکی از دوستاش که سر و تنش رو شسته بود به رختکن هموم اومد و تا خودشو خوش کنه و لباسش رو بپوشه که چشمش به بلقاسم و کفشاش افتاد. و اون رو کلی سرزنش کرد که ای مرد تا کی میخوا این کفشای بد بدترکیب و پاره پاره رو بپوشی. ناسلامتی تو از تاجران عمده بازار بقدادی؟ در تمام شهر مردم پشت سر ترس میزنن و به ریشت میخندند. در هر گوشه بغداد که بری صد جور داستان مسخره برات درست کردن. درباره همین کفشهایی که ده 20 سال عمر کرده بلغاسم. این کفش برای تو باعث آبروریزی ریزی و رسواییه. برو این کفش رو عوض کن. اگه باز هم بخوای خسیس بازی در بیاری و کفش نو نخری ناچارم فداکاری کنم و یه جوف کفش نو برای دوست قدیمیم بخرم. بلقاسم توی فکر رفت و گفت شاید حق با تو باشه. کم کم به فکر افتادم این کفش ها رو که سالهای سال به من خدمت کردن و نشسته کنم. و اون دوست بعد از اینکه از بلقاسم قول قطعی گرفت که کفش نو بخره خداحافظی کرد و رفت و بلقاسم رخت هاشو کند و کفش در گوشه گذاشت و رفت که شسوشوی داشته باشه. از قضای روزگار بعد از ابوالقاسم قاضی بقداد که به دقت و سخت گیری در امر قضاوت معروف بود به هموم اومد. و رختهاش رو در کنار رخت های بلقاسم کند و رخت که سر و تنش رو بشوره بلقاسم خودش رو شست و به رختکن اومد و خودش رو خوش کرد و لباسش رو پوشید اما کفش های اون غیب شده بود و به جاش یه جفت کفش نو ترتمیز گذاشته بودن که بلقاسم به این فکر دوست مهربونش بعد از اون همه تندی و تیزی و صحبت از رسوایی و آبرویی اینها رو در اولین فرصت خرید و بیخبر به همون اومد و کفشها رو گذاشته براش و چقدر تعجب کرد چون درست به اندازه پاش بود چابک و راحت از همون بیرون اومد و با این که با کفش های کهنه خودش اونس گرفته بود اما این کفش نو از بس خوب و نرم بودن قم و از دست دادن کفش مشهور رو از یادش برده بود وزیر لب می گفت گمان نمیکردم در این دور زمونه چنین دوست خوب و عزیزی هم باشه که بخواد برای من این هدیه رو بگیره و حتی انقدر سر شوق اومده بود که با خودش میگفت که باید این محبت دوست عزیزش رو جبران کنه و در این فکر بود که چطور باید این محبت رو جبران کنه که خرج زیادی رو دستش نذاره و اما بشنوید از جناب قاضی که بعد از شستش روی سر و تن و بدنش در خزانه حمام به رختن اومد و خودش رو خوش کرد و لباس پوشید اما هرچه دوروبرش رو نگاه میکرد کفش پیدا نمیکرد صندوق هموم در رحکم نشسته بود که به یاری جناب قاضی اومد و همه جا رو گشت و کفش های تکه تکه بلقاسم رو که در گوشه دیدن و به حضور جناب قاضی آوردن و گفتن که ظاهرا بلقاسم کفشاتون رو به اشتباه پوشید و بیرون رفته. جناب قاضی فریاد کشید و گفت مگه امکان داره که بلقاسم کفش نو ترتمیز من رو با اون کفش های پار پارش بخواد اشتباه بگیره؟ حتما قصدش دزدیدن کفش های منه قاضی به محض اینکه به خونه رسید حکم صادر کرد که بلقاسم رو بگیرن و به زندان ببرنش اون شب تا صبح بلقاسم در زندان موند و صبح روز بعد مبلغی به عنوان جریمه ازش گرفتن و کفش های رو به دستش دادن و بیرونش انداختن بلقاسم برای اولین بار کینه و نفره کفش های رو به دل گرفت چون این کفش بعد از سالها خدمت بهش خیانت کردن و پرداخت جریمه نقدی رو روی دستش گذاشتن به همین علت بلقاسم تصمیم گرفت اونها رو سربه نیست کنه و برای این منظور در سر راهش کفش ارزان قیمتی خرید و بپا کرد و به کنار دژره رفت و کفشهای کهنش رو با ریسمانی محکم به هم بست و پرد کرد میان انباج خروشان بلقاسم خیال میکرد که برای همیشه از دست اون کفش های کهنه راحت شده و دیگه اونها رو به چشمش نمی بینه. اما اون کفش که با ریسمان به همدیگه بسته شده بودن به جای این که در اعماق فرو برن همراه موج رفتن و رفتن در تور ماهیگیری افتادن. ماهیگیر تعجب کرد. به وقت خودش نفری میکرد که به جای ماهی یک جف کفش پاره در تورش افتاده میخواست کفش ها رو دوباره به رودخانه بندازه که دفعه چیزی به ذهنش رسید و کفش های بلقاسن رو شناخت و به فکر افتاد اونها رو بردار و به خونه بلقاسن ببره و از اون مشدگانی بگیره چند ماهیگیر که در کنار دژنه نشسته بودن تورهاشونو به آب انداخته بودن. وقتی ازش شنیدن که قصد داره بره و از ابلقاسم مجدگانی بگیره بهش خلیدن و گفتن بلقاسم یک دینار به کسی نمیده. اما او ماهگیر گفت همه مردم بقداد میدونن که بلقاسم این کفش ها رو از جونش بیشتر دوست داره و بعضیا میگن که بلقاسم وصیت کرده این کفش ها رو باهاش درگور بذارن. ماهیگیران خندیدند و چیزی نگفتند و اون ماهیگیر کفش ها رو برداشت و به خونه بلقاسم رفت اما هرچه در زد کسی در رو باز نکرد از بس ناراحت شده بود کفش ها رو با تمام قدرت از بالای دیوار به داخل خونه پر کرد و از اتفاق در اتاقی که ظرف شیشهای و عطر و گلاب دمشق در اونجا روی هم چیده بودن باز بودن و کفش درست در وسط ظروف شیشهای و بسیار کمیاب افتادش و ظرف های دیگر و شیشه های و گلاب در هم ریختن و همین که بلقاسم به خونه رسید و ظرف های شکسته و عصر گلاب و با گل و خاک قاطی شده در اون اتاق دید کم مونده بود که قلبش از حرکت بیفته کمی که حالش جا اومد وارد اون اتاق شد و کفش های خودش دید متوجه شد که اون کفش ها این همه خسارت و زره رو بهیست زدن نمیدونست که چی کار کنه و چه خاکی توی سرش بریزه موهای خودش رو میکند و با مشت توی سر خودش میکوبید و عاقبت برای اینکه کفش‌های لعنتی ضربه تازه بهش نزنند شبانه بیل و کلنگ برداشت و رفت توی باغچه، گودالی کند و کفش‌ها رو تی گودال اندخت و با خاک اون گودال رو دوباره پر کرد و با خیال راحت به خوابگاه رفت. قافل از اینکه یکی از همسایه ها در دل شب به بالایی بام رفته و اون رو در این حالت دیده و فردای اون شب به حاکم بغداد خبر میدن که بلقاسم گنجی رو از گدالی در وسط باخچش بیرون آورده و به گوشه برده و در اونجا پنهان کرده حاکم بغداد چند نفر رو فرستا تا بلقاسم رو به حضورش بیارن و سرش داد کشید که مگر نمیدونی که هر کس گنجی در دل خاک پیدا کنه باید بیاره و به خزانه تحویل بده و هرچه بلقاسم قسم خورد و ادعا کرد که کفشای کهنش رو در گودال دفن کرده حاکم به اینکه اون داره اون رو دست میندازه دستور داد پاهاش رو به فلک ببندن و چوبش بزنن و چند نفر هم فرستاد که همه خونه اون رو زیر رو کنند و گنج رو هر کجا که هست با خودشون بیارن. اما اونها در اون گودال جز های پاره بلقاسم چیزی پیدا نکردند و در خونه اون هم چیزی کشف نشد و چون خود بلقاسم هم هر چه چوب میخورد چیزی رو اقرار نمیکرد ناچار جریمه سنگینی ازش گرفتن و کفش های رو به دستش دادن و بیرونش انداختن بلقاسم این بار تصمیم گرفت که کفش های رو طوری سر کنه که دیگه هیچ کس نتونه از اونها نشانهای پیدا کنه از شهر بقداد بیرون رفت و به کاروان سرایی رفت که چندین چاه عمیق داشت بلغاسن کفش ها رو با ریسمانی به هم بست و اونها رو انداخت در یکی از اون چاه های عمیق که ته اون معلوم نبود و اطمینان داشت که در چنین چاهی شطور با بارش گم میشه تا چه رسد به یک جفت کفش کهنه و خیالش از هر بابت راحت شد و به خونه رفت اما داستان کفش های کهنه در همین جا تمام نشد چون کفشای اون در ته چاه فرو رفتن در سوراخی که آب از اون جریان داشت اما بلقاسم خبر نداشت که این چاههای عمیق امیق منبع و سرچشمه آب قسمتی از شهره و آب از چند قنات دور وارد این چاه ها میشه و از این راه به طرف چند محله در حاشیه شهر بقداد میره و تفشهای کهنه درست در منفذی گیر میکنه که آب در اون جمع میشد و و به سمت شهر جاری میشد و با بست شدن محل نفوذ جریان آب قطع شد و در چند محله که بی آب مونده بودن سر و صدای شد. و ناچار کسایی که کاری انجام میدادند که بخوان این راه نفوذ رو باز کنن رفته بودن کاروان و به تی چاههای عمیق رفتن و اونها اونجا کفشهای بلقاسم را پیدا کردند. و به دست نگهبانا دادند که به حضور حاکم شهر ببرند که حاکم شهر وقتی که این کفش ها رو دید از خشم رنگش کبوت شده بود و دستور داد که بلقاسم رو به زندان ببرند و چند شبانه روز اون رو در زندان نگه دارند و عاقبت بعد از اینکه مبلغ زیادی ازش گرفتند آزادش کردند و کفش هاش رو هم زیر بغلش گذاشتن و بهش دادند بلقاسم وقتی به خونه رسید کفش های خیص رو روی بام برد و در آفتاب گذاشت که خشک بشه تا در وقت مناسب اونها رو بسوزونه و از بین ببره بعد از رفتن بلقاسم گروهی که روی بام بود اون کفش ها رو دید و کنجکاف شد و جلو دوید و ریسمانی رو که اون کفش ها به هم بسته بود از طریق همون ریسمانه با چنگ و دندون گرفت و به این طرف و اون طرف کشون و بازیکنان اون رو برد به سمت لبه بومی که به طرف کوچه بود و با یک تکان کفش ها سر داد و به پایین رفتن و یه دفعه کفش ها از بالا به کوچه سرازیر شدند. اما در حین پایین افتادن خورد توی سر یه نفر که سوار بر اسب بود و اون فریاد کشید و اسب رم کرد و سوار رو درست جلوی در ورده بلقاسم به زبین کوبید و اون یه نفر که سوار اسب بود و زمین خورده بود منشه مخصوص حاکم بود چند نفر که توی کوچه بودن و شاهد این ماجرا دویدن و اون رو که از سرش خون میریخت و دست و پاش ضرب دیده بود آسیب دیده بود از جاش بلند کردن و یک نفر هم جلو دوید و کفش های بلقاسم رو از زمین برداشت و به همه نشون داد و گفت این کفش ها باعث بانی این بلا شدن منشه مخصوص حاکم در همون روز شکایت نامه به قاضی نوشت و کفش ها رو به عنوان مدرک جرم با شکایت نامه خودش نزد قاضی فرستاد قاضی چند نفر رو فرستاد و بلقاسم قاسم بینوا رو نزدش برد قاضی وقتی چشمش به بلقاسم قاسم افتاد سرش فریاد کشید دفعه اول که تو رو با این کفشا به اینجا آوردم باید تو رو چنان مجازات می کردم که از کار خودت پشیمون می شدی و با این کفش ها سر و دست مردم رو نشت کنی. قاضی چند دقیقه تمام از ابوالقاسم بدگویی کرد و انواع و اقسام اتهامات رو بهش وارد کرد و عاقبت گفت حالا اگه حرفی داری بزن وگرنه حکم می کنم در تجارت خانه‌ات رو ببندند، تمام انباراتت رو مصادره کنند و از این شهر بیرونت بندازند. تو در این چند هفته صدای تمام مردم شهر بغداد رو بیرون آوردی و هر کس از گوشه ای اومده تا از تو شکایت کنه. بولقاسم بینوا اول چیزی نگفت. انقدر احساس درماندگی میکرد که دلش میخواست دارش بزنن تا از این همه بد و بیرایی که دارن بهش میگن خلاص شه اما عاقبت طاقت نیورد و گفت جناب قاضی اگه به من فرصت بدید که داستان رو از اول تا آخر بگم و شهر بدم براتون که کفش های تکه تکه چه بلایی به سر من آورده و من رو از حسی ساقط کرده و به روز سیا نشونده من هم خودم رو تسلیم شما میکنم تا هر حکمی که دلتون میخواد بدید حتی اگه دستور بدید دارم بزنن خیلی خوشحال میشم و از شما تشکر میکنم قاضی اشاره کرد که داستانش رو تمام و کمال توضیح بده و بلقاسم داستان رو از روزی شروع کرد که در حمام به اشتباه کفش قاضی رو پوشید و به خونه رفته. هرچه در این چند هفته بر اون گذشته بود توضیح داد و بعد از تمام شدن داستان از جاش بلند شد و کفش های کهنش رو به هوا پرتاب کرد و اونها رو در میان زمین و هوا با دستش گرفت و گفت حضرت قاضی، این کفش ها باعث بانی این همه بلا مصیبت بودن و من از همین حالا در محضر شما اعلام میکنم که این کفش ها از این به بعد مال من نیستن و اگر بلایی سر کسی آورد و جنایتی کرد و خیانتی کرد به من مربوط نیست و شما میتونید این کفش ها رو به محضر دادگاه بیارید و از اونها بازجویی کنید و برای اونها حکم بدید قول میدم که هر حکمی که برای اونها دادید من اعتراض نخواهم داشت. اخمهای های قاضی باز شد و به خنده افتاد. دلش برای بلقاسم سوخته بود. کفش ها رو ازش گرفت و به ماموران داد که هرچه زودتر اونها رو از بین ببره. و به بلقاسم نصیحت کرد که بعد از این کفشهاش رو قبل از اینکه که پاره و کهنه بشه عوض کنه و کفش نو بپوشه تا به این بلا گرفتار نشه از داستان کفش های بلقاسم به این نتیجه گیری میرسم زمانی که ما بخوایم یک کتاب رو مطالعه کنیم و از آموخته هایی که از اون کتاب یاد گرفتیم نخوایم در زندگیمون استفاده کنیم و در زمان مقرر ازش بهره ببریم در واقع تاریخ انقضای اون مطلب میگذره و دیگه هیچ موقع ما نمیتونیم از اون مطلب استفاده کنیم شما فرض کن یه تخم مرغ گرفتی و تاریخ انقضاش گذشته و زمانی که بگذره جاش در سطح زباله هستش پس وسایل ها اطلاعات که داریم رو بخوایم در زمان مقرر درست ازش استفاده کنیم و بعد از اینکه تاریخ انقضاش به اطمان بسید برای اون جایگزین خوب تعریف کنیم مرسی از شما همراهان که تا آخر این پادکست صوتی همراه من بودید سفر به دنیای پر رمز و رازه